نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولی کن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین سواب است. هزر کن زن چه دشمن گویدن کن که بر زانو زنی دست تقابن گرت راهی نماید راست چون تیر از او برگرد و راه دست چپ گیر.